سوره مبارکه از شمس، از سورهایی هست که در ابتدای مکی زندگی مکی نازل شد، 26 شومین سوره هست بر آن حضرت صلی الله علي سلم نازل شد، اما مناسبت سوره با سوره گذاشته در سوره مبارکه اعلی که از اونجا گفتیم بحث توحید و تزهید شروع شد، این هر دو سوره هم در شمس هستند، هم در و لیل هستند در شمس وتفرق في الاعتقاد در والليل إذا يغشى تزهيد من الدنيا وتفرق في الأعمال هاس. توجه بفرماد الله تعالى إن جاهم بخلائق بزرق بمخلوقات بزرق سوغان دي آدمي كنت اللهم والشمس وضحاها قسم بخرشيد والضحاها والنور خرشيد ز وقت زح وقتی را میگوند که خورشید به اندازه یک نیزه و دو نیزه بالا می زند، وقت نماز زحا می میشه، وقت نماز چاشت می میشه. این وقت که وقت نورانی و روشنی هست والقمر اذا تلاها قسم به ماه وقتی که ما خورشید را دنبال می ماه ما همیشه به تعقیب خورشید است دنبال خورشید است و نورش را از خورشید می گیرد، و النهار اذا جلله، و قسم به روز وقتی که آن را روشن می کند یعنی در روز خورشید روشن میشه وال اذا یغشاها و قسم به شب وقتی که آن را تحت پوشش قرار میده یعنی همه جا تارخ میشه و وما بناها و قسم به آسمان و ان چک بنای آسمان و بلندی و سقف آسمان است بنا بعضی میگ خمی را امو سخف مراد است که آسمان در واقع سخفی هست برای اهل زمین والارض وما طحاها والسوغان بزمین وما طحاها طحری زمین یعنی گسترده شدن زمین و پهن شدن زمین و پهنایی اون ونفس وما سواها به بالنفس بعد از این که خدای عزوجل اینها را شاهد گرفت قسم خوردن به مخلوقات یعنی شاهد گرفتر اونها بعد از اون نفس خود انسان را شاهد میگیرد و نفس یعنی قسم به نفس یعنی خود نفس هم گواه هست و ما سواها و آنچه که خدای عزوجل نفس را ایجاد کرد و ما سواها یعنی انشعها عبدعها نفس را ایجاد کرد به وجود آورد درستش کرد اما خدا وقتی که درست کرد نفس را فألهمها فجورها وتقواها در نفس الله عز وجل دو قوت فجور و تقوی را گذاشته مطلب بارها یادآوری شده صحبت شده که الله تعالی در نفس هر انسانی دو تا صلاحیت گذاشته هم صلاحیت فجور سلاحیت فوجور نفس انسان فاجر و فاسق میشه با دوتا قوت که خدا در هر نفسی گذاشته هم قوت غزبانی و هم قوت شهوانی انسان وقتی که قوت غزبانیش را کنترل نکند عصبانی میشه ظلم میکند یا کسی را میکشد یا تو گوش کسی میزند یا دست و پای کسی را میشکند یا آبروی کسی را میبرد بالاخره این قوت غزبانی هست. قوت شهوانی اینه که انسان در انسان نفس انسان الله تعالی شهوت گذاشته وقتی که انسان اون را کنترل نکند گرفتار فساد اخلاقی میشه لذا این هست حالات فجور چه بر کسی ظلم بکنی چه به سر کسی بزنی چه گرفتار فساد اخلاقی بشی لذا اینجا مرتکب فجور شدی مرتکب فسق شدی نفست را آلوده کردی اما و تقواها صلاحیت دوم که خداوند در انسان نهاده تقوا و خدا ترسی نفس هست از خدا می و بر اساس تقوایی که دارد خلاف نمی کند نافرمانی خدا, خدا نمی کند لذا الله می فرماید این هر دو قوت و هر دو صلاحیت و استعداد را من به هر نفسی دادم اما ببینید انسان موفق و نفس موفق کدوم نفس است. قد افلح من زکاها همان رستگار هست اون انسانی که زکاها اون نفس خودش را تذکیه می کند تذکیه نفس و پاکی نفس از تمام خبص از تمام فسادها از تمام غذب و شهوتها نفس را انسان کنترل بکند واقعا کنترل کردن نفس خیلی مهم است. و وظایفی که رسول الله صلی الله علیه و برای رسول الله بیان شده قبلا خدمت طلاب عرض کردم که چهار وظیفه هستن اولینش بعد از تلاوت تزکیه است یتلوا عليهم آیاتی و یزکیهم که سجه تزکیه مقدم است تزکیه هست که باید هر کسی تزکیه بشه رسول الله هم آمده که ما را و نفوس ما را تربیت بکند و تربیت و تزکیه با آیات قرآن و ها و هدايات رسول اکرم صلی الله عليه وسلم لذا انسان رستگار اون انسانی هست که زکاه نفس خودش را تزکیه می کند و قد خاب و خائب و خاسر هست ناکام و نامراد هست اون انسانی که من دست ساها نفس را آلوده می کند، دست میگویند یک چیزی را در خاک شما بمالید و خاک آلودش بکنید. لذا نفس را آلوده کردن با گناه، با معصیت، با نافرمانی خدا، با هر حرامی که انسان مرتکب بشه، نفس خودش را انسان آلوده کرده. الله عزوجل می کذب و به توانممون نمونه از تخویف دنیای بی. الله بیان میفهمدکس کذب سمود و به تواها سمود تکذیب کرد. قوم سمود تکذیب کرد به توا یعنی به سبب تقینگری به سبب سرکشیه که داشت مبعث بعث اشقاها ببین اونا چطور نفسشون را راضی کردن. وقتی که اونها برانگیختن تحریک کردن بدبختترینشون را. همون مردکی که او را تحریک کردن بره شتر را بکشد شطور را از پای در بیارد فقال لهم رسول الله ناقت الله و اما پیامبر خدا رسول خدا که حضرت صالح بود به انها گفت ناقت الله یعنی احفظو ناقت الله از این شطوری که سوی خدا آمده محافظت کنید و و سهم آبش را بهش بدهید اینجا ببینید بین نفس و بین بالاخره خدا باید دیک معامله میکردن چون نفس این طرف جانب مال و دنیا بود مواشیشان حیواناتشون همیش وحشت داشتن نمیتونستم با اون چطور زندگی بکنند و اما طرف دیگر این ناقه الله بود آیه از آیات الهی بود بالاخره اونها چکار کردن فکذ ذبوه اون پیغمبر خدا را صالح را تکذیب کردند فعقروها از پای درآوردند اون شطور را لذا اینجا به دستور نفس و شیطان عمل کردند و خدای از جل را و حکم خدا را نادیده گرفتند فدم دم علیهم ربهم بذنبهم نابود کرد آنان را ربشان تباه کرد و برباد کرد به سبب گناهشان فسواها پس اون را برابر کرد یعنی تصویه کرد به چه معنی با خاک یکسانشون کرد به این معنی هست ولا یخاف عقباها الله عز وجل از عاقبت و از انجام و از این که فردا چه اتفاقی مفته الله تعالی از این خوفی ندارد از این ترس و وحمی هم ندارد صدق الله مولانا العظیم